دوستای خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. ما طی این دوره تاریخ قوم برگزیده خدا رو مطالعه می اگرچه تاریخ در بعضی وقتها به نظر می خسته کننده باشه، با این حال خیلی چیزها هست که هنوز باید یاد بگیریم. سرمشقا و عبرتهای خوبی در وقایی و زندگی افراد هست که مطالعه خواهیم کرد. یادتون باشه که همیشه از خودتون این سال مهم رو بپرسین معنی این برای من چیه؟ دعای ما اینه که خدا با قلب شما صحبت کنه تا اصولی رو یاد بگیرید که در زندگی امروز شما بهتون کمک کنه حالا این شما و این هم معلم ما در حالی که این کتاب تاریخی رو بررسی می لازمه که دوباره اشاره کنیم که کتاب تاریخی به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول سه تا کتاب تاریخی تمثیلی هست که عبارتند از داوران، یوشا و روت این کتاب ها به غیر از اینکه عملا تاریخی هستند کتاب های تاریخی تمثیلی نیز هستند. تمام این وقایعی که برای اونها اتفاق افتاده نوشته شدند تا برای ما و همه اونهایی که تا زمانهای آخر خواهند آمد نمونه و عبرت باشند. کلمه مثال ها در اظهارات پولس رسول در باب ده اول قرنتیان، آیه یازده به چشمی خوره که میگه این امور چون نمونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتی باشد برای ما که در زمانی به سر میبریم که قایت همه احصار تحقق یافته است. کتاب های اول و دوم سمائیل، اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ به ترتیب تاریخ وقوع قرار گرفتند. این شش کتاب دومین دسته از کتاب تاریخی هستند. این کتاب ها به عنوان کتاب ها و نوشتهجات تاریخی پادشاهان معروف هستند کتاب اول سموئیل ها قبل به عنوان اولین کتاب پادشاهان شناخته میشد وقتی به کتاب دوم سموئیل مراجعه می‌کردید، سابقا به عنوان کتاب دوم پادشاهان نیز شناخته میشد وقتی به کتاب اول پادشاهان مراجعه می کردید، سابقا به اون کتاب سوم پادشاهان گفته میشد کتاب دوم پادشاهان نیز به عنوان کتاب چهارم پادشاهان شناخته میشد. به نظر من این کتاب‌ها همه مربوط به دوره پادشاهان هستند چون که درباره پادشاهی خدا با ما صحبت می‌کنند. وقتی که به کتاب پادشاهان می‌رسیم و این کتاب‌ها رو می‌خونیم و بررسی می‌کنیم مهمه که بدونیم به دنبال چی باید باشیم. میخوام که کتاب های اول و دوم سمایل رو مد نظر قرار بدیم و سعی دارم شما رو به چالش بکشم که در حالی که این کتاب ها رو می خونید به یک اجماع کلی برسید. اولین چیزی که ما باید ضمن مطالعه این کتاب ها دنبالش باشیم، مفهوم پادشاهی خدا هست. پادشاهی خدا مفهومی بسیار بسیار مهمه. در معزه سر کوه در باب 6 متا وقتی، عیسی مسیح از اولویت ها و ارزش ها صحبت میکنه بعد از اینکه از خیلی چیزها صحبت میکنه که برای ما ارزش دارند عیسی میگه نخست در پی پادشاهی خدا باشید وقتی عیسی به ما یاد داد که چطور دعا کنیم گفت وقتی دعا میکنیم باید بگیم ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد پادشاهی تو بیاید اراده تو آنچنان که در آسمان انجام میشود بر زمین نیز به انجام برسد نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما قبل از اینکه که به ما یاد بده که دعا کنیم به ما بده، سه بار تاکید کرده که خدا را در اولویت قرار بدید. عیسی به ما یاد داد که بگیم خدا یا نام تو، خدا یا پادشاهی تو، خدا یا اراده تو. این چیزی که برای من مهمه. حالا در تکمیل این سه درخواست، نیاز مرا را هم به من عطا کن. چرا ایسا این درخواست رو در نمونه دعا که ما به اون دعای شاگردان میگیم قرار داد؟ پادشاهی تو بیاید چون که پادشاهی خدا مفهومی بسیار مهمه. در سومین باب از انجیل یوحنا به ما گفته شده که ایسا تمام شب رو با صحبت با عالمی به نام نیقودیموس سپری کرد. ما میدونیم که اونها راجع به تولد تازه صحبت کردند. عیسی به اون عالم گفت: نیقودیموس. تو باید از نو متولد بشی. امروز شما خیلی راجع به تولد تازه خواهید شنید و من از این بابت خوشحالم. از نو متولد شدن یعنی چی؟ خیلی ها اون معانی زیادی داره. معنی اون در کتاب مقدس چیه؟ وقتی که به باب سوم یوحنا رسید، باید اینو ملاحظه کنید. وقتی که عیسی تمام شب رو با اون عالم به سر برد، تولد تازه موضوع بحث اساسی اونها نبود. تولد تازه دومین موضوع مورد بحث اون شب بود. موضوع اساسی بحث پادشاهی خدا بود. وقتی عیسی به نیقودیموس گفت که باید از نو متولد بشه اینطور گفت آمین آمین به تو میگویم تا کسی از نوزاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. و باز گفت آمین آمین به تو میگویم تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد. بسیاری بر این باورند که وقتی نوزادی متولد میشه او بعد از پاره شدن کیسه آب تولد جسمانی پیدا میکنه تا زمانی که کسی به لحاظ جسمانی و روحانی متولد نشه نمی تونه وارد پادشاهی خدا بشه تولد تازه آنطور که عیسی برای شرط داد پایان کار نیست پایان کار در پادشاهی خداست. است بینید که چقدر مفهوم پادشاهی خدا در کتاب مقدس مهم هست. پادشاهی خدا چیه در این کتابهای تاریخی عهد قدیم اول و دوم سموئیل، اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ میتونید بفهمید که وقتی کتاب مقدس به پادشاهی خدا اشاره میکنه منظورش چیه. برای اینکه حضور ذهن داشته باشید میخوام به بعضی از های قبلی اشاره کنم. وقتی ما مطالعه این کتابهای تاریخی رو شروع کردیم، من نموداری از خلاصه تاریخ قوم خدا رو براتون رسم کردم. وقتی به جایی رسیدیم که بنی اسرائیل رهبری بر طبق اراده خدا داشتن، اما تصمیم گرفتند که رهبری به نابع اراده خودشون داشته باشند، من گفتم که چیزی که خدا برای اون قوم میخواست یک حکومت خداسالاری بود یعنی خدا بر قوم فرمان روایی میکرد تنها چیزی که خدا برای این حکومت خداسالاری نیاز داشت یک نبی کاهن مثل موسی یا سموئیل بود وقتی که موسا بر سر کوه رفت که برای قوم نزد خدا شفاعت کنه او یک کاهن بود وقتی که از کوه پایین آمد و با کلامی که از سوی خدا بود به سمت قوم آمد، او یک نبی بود. تا زمانی که خدا مردی مثل موسا داشت، میتونست قوم رو توسط اون مرد رهبری کنه. اون نبی کاهن میتونست ای برای انجام اراده خدا باشه و خدا پادشاه اونها میشد. این چیزی بود که خدا میخواست. در کتاب اول سموئیل سموئیل یک چنین رهبری بود. صموئيل یک کاهن نبی بود. سموئیل همون کاری رو کرد که موسی کرد. اما در دوره سموئیل مردم نزد او آمدند و گفتند: سموئیل ما این روشی رو که خدا شاه ما بشه نمیخواهیم ما هم خواهیم مثل دیگر اقوام یک شاه داشته باشیم. سموئیل خیلی پریشان شد. تصورش رو بکنید، او بسیار پریشان احوال بود وقتی که صموئيل در مقابل خدا بر خاک افتاد، خدا گفت: آواز قوم را در هرچه به تو گفتن بشنو زیرا که تو را ترک نکردن بلکه مرا را ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. بعد خدا به سموئیل گفت اگر اونها پادشاه میخوان ما به اونها پادشاه خواهیم داد. روش خدا اینه. وقتی خدا به طور العاده در بیابان اونها را با من تغذیه کرد اونها گفتند که ما گوشت میخواهیم و خدا گفت بسیار خوب شما میتونید گوشت بخورید. نه تنها یک روز، نه تنها دو روز بلکه سراسر ماه رو هر روز گوشت خواهید خورد تا از دماغ شما بیرون بیاد و از اون نفرت پیدا کنید این چیزی که شما میخواید و اون رو خواهید گرفت این روش خداست در مزمور سی و هفت خدا وعده میده که امیال دل ما رو به ما بده اون حقیقت همونقد که یک وعده هست چالش نیز هست امیال دل ما چی هستند؟ اونا هر چی که باشن، ما میتونیم اونها رو داشته باشیم وقتی خدا به اونها به جای مننا گوش داد مزمور نویس میگه او درخواست اونها رو به اونها داد اما به جانهایشان لاغری فرستاد وقتی یک پادشاه خواستند خدا باز هم همون کار رو کرد خدا گفت ببینید نقشه من این بود که پادشاه شما باشم اما شما پادشاهی به روش خودتون می‌خواید پس سموئل به اونها پادشاه بده دوم تواریخ تکرار همون دوره تاریخی هست. تمامی این شش کتاب مربوط به پادشاهانی هستند که اونها می‌خواستند. به این دلیلی که این شش کتاب بنوان کتاب های تاریخی پادشاهان خوانده شدند. اولین پادشاه اونها مردی به نام شاول بود. سموئیل از اینکه اولین پادشاه را عجیر می کرد خوشحال بود. تا حالا پادشاهی را عجیر کردید؟ آیا این مزهک نخواهد بود؟ سموئیل این امتیاز را داشت که اولین پادشاه اسرائیل را عجیر و بکنه. ما در سلطنت این پادشاه خیلی زود متوجه میشیم که خدا مانند دوره انبیاء کاهن مثل موسی و سموئل کار چندانی نمیکنه. کنه. موسی و سمویل همون کاری رو میکردند که خدا به اونها میگفت، اما شاول پادشاه از خدا اطاعت نمیکرد. وقتی شاول نا اطاعتی می کرد خدا نمیتونست به وسیله او کار کنه. بنابراین سمویل از اجیر کردن اولین پادشاه خدا خوشحال بود. خدا گفت برو و او را اجیر کن. چون که اگر کاری رو که به او میگم انجام نده، من نمیتونم توسط او کار کنم. به این دلیل، پادشاه بعدی مردی بود به دنبال قلب خدا که تمامی اراده خدا رو به جا می آورد. بعدها میبینیم که سمویل به شاول میگه، امروز خداوند سلطنت اسرائیل رو از تو پاره کرده، آن را به همسایت که از تو بهترست داده است. به مردی که به دنبال قلب خداست و تمامی اراده او رو انجام خواهد داد. اگر مردی تمامی اراده خدا را انجام بده، خدا میتونه از طریق اون شخص کار کنه. خدا میتونه از طریق چنین پادشاهی کار کنه. خواه پادشاه مطیع خداوند باشه یا پادشاهی نافرمان باشه، کاهن نبی همیشه حضور داره. اما او همیشه در پشت صحنه قرار داره. اگر پادشاه اراده خدا را انجام نده، کاهن نبی به روی صحنه میاد و کلام خدا و اراده او رو برای اون پادشاه اظهار میکنه. کاهن نبی به اون پادشاه میگه بهتره که کاری رو بکنی که خدا میخواد در غیر این صورت تو و قوم در دردسر بدی خواهید افتاد این وقایه رو در سرتاسر سر نوشتجات پادشاهی میبینیم داوود بهترین پادشاهی بوده که قوم اسرائیل داشته چون داوود پادشاهی مطیع بود و میخواست که اراده خدا رو به کمال انجام بده خدا توسط داوود کار کرد بعد از داوود سلیمان بر تخت نشست در ابتدا به نظر می رسید که سلیمان مردی خواهد بود که خدا بتونه ازش استفاده کنه. در همون ابتدای حکومتش سلیمان از خدا برگشت. سلیمان 700 زن و 300 زن سیغیی داشت. این زنان سلیمان را از خدا منحرف کردن. و بعد مصیبت به قوم خدا روی آورد. به خاطر سلطنت سلیمان پادشاهی تجزیه شد. ده تایفه در شمال اسرائیل بودند که خودشون رو اسرائیل نامیدند و دو طایفه در جنوب بودند، های بنیامین و یهودا که در مجموع به نام یهودا خانده می می‌شدند. پس بنی اسرائیل تقسیم شدند، اما نه به خاطر گناهان داوود، بلکه در نتیجه گناهان سلیمان. عرامیان پادشاهی شمال را به اسارت بردند و این طایفه ها هرگز از اسارت باز نگشتند و هرگز نامی از آنها شنیده نشد. بابلی ها بر پادشاهی جنوب غلبه کردند. طایفه های بنیامین و یهودا به بابل به اسیری رفتند و به مدت هفتاد سال بنی اسرائیل سرزمینی داشتند اما کسی در آن سرزمین نبود چون که اونها در سرزمین های خودشون زندگی نمی کردن. وقتی هفتاد سال گذشت پارسیان بر حکومت بابل غلبه کردند و یکی از چیزهایی که بعد از غلبه پارسیان به وقوع پیوست خوابی بود که کروش کبیر امپراتور پارس دیده بود در این خواب خداوند زنده و حقیقی او را وادار کرد که فرمانی صادر کنه که طبق آن هر اسیر یهودی که در بابل یا پارس بود آزاد بود که به اسرائیل برگرده و معبد و شهر و کشورش را از نو بنا کنه. وقتی که خلاصه ای از تاریخ یهودی رو بهتون دادم گفتم که تاریخ یهود میتونه موضوع مشکلی باشه. بر لازم نیست که شما دانشجوی رشته تاریخ قوم یهود باشید تا تونید اندازه کافی عهد قدیم رو بفهمید و کاربرد عملی برای زندگی شخصی خودتون از اون پیدا کنید برای اینکه خواندن قدیم و نوشتهجات تاریخی براتون مفید باشه شما فقط لازمه که هفت واقعیت رو از تاریخ یهود بدونید اولین واقعیت پادشاهی بود مردم یک پادشاه میخواستند پس خدا به اونها پادشاه تا به خاطر گناهان سلیمان پادشاهی به دو بخش تقسیم شد پادشاهی تقسیم شده دومین دو واقعیت هست. سومین واقعیت اینه که عرامیان پادشاهی شمال رو به اسارت بردند و واقعیت چهارم انقراض پادشاهی شمال بود بعد از اینکه ده تایفه شمال توسط آشور مغلوب شد و به اسارت رفت بعد از اون هرگز درباره اون ده تایفه چیزی نمیشنوید. از اونها به عنوان نسلهای گم اسرائیل یاد شده به اسارت رفتن پادشاهی جنوب توسط بابلیها. پنجمین واقعیت تاریخی قوم یهود هست که لازم بدونیم. واقعیت ششم قلبه پارسیان بر حکومت بابل هست و واقعیت هفتم بازگشت برخی از یهودیان از اسارت بابل هست. اگر اون هفت واقعیت تاریخ یهود رو درد کنید، اونقدر تاریخ یهود رو خواهید فهمید که بتونید عهد عتیق رو با دقت مطالعه کنید. اگر تصمیم بگیرید که به طور جدی دانشجوی کتاب مقدس باشید، هم عهد قدیم و هم عهد جدید دقیقاً باید مفهوم پادشاهی خدا رو درک کنید این موضوع باید برای خدا موضوع مهمی بوده باشه چون که در عهد قدیم شش کتاب به ما داده که همه در زمینه پادشاهی خدا هست در حالی که این نوشتجات و کتاب‌های تاریخی پادشاهان رو می‌خونید تأکیدی رو بر روی مفهوم مهم پادشاهی خدا مشاهده می‌کنید برای اینکه اهمیت پادشاهی خدا رو در عهد جدید متوجه بشید باید پادشاهی خدا رو در عهد قدیم درک کنید. در عهد قدیم پادشاهی خدا دقیقاً به این معنیه که خدا پادشاه هست و خدا یک پادشاهی داره پادشاهی قلم روییه که در اون یک پادشاه حکومت میکنه. وقتی که میگیم پادشاهی خدا معنیش این هست که خدا پادشاه هست و بر قلم رویی که حکومت میکنه تسلط داره. در عهد قدیم اراده مستقیم خدا این هست که او پادشاه بنی اسرائیل باشه. خدا میخواد که بنی اسرائیل جزء پادشاهی او باشن، پس علاقه خدا بر این هست که این پادشاهی خدا واقعی باشه. خدا میخواد که پادشاهی او تاریخی و جغرافیایی باشه. خدا میخواد که پادشاهی خدا بر قومی خاص باشه که در ناحیه جغرافیایی خاصی در زمین و در دوره خاصی از زمان زندگی میکنن. خدا میخواد که پادشاه اونها باشه و میخواد که این قوم خاص جز پادشاهی او بر روی این زمین باشند این نقشه خدا بود اما بنی اسرائیل توسط سمویل به خدا گفتند ما این ساماندهی رو دوست نداریم ما درست مثل اقوام دیگه پادشاه میخوایم و خدا گفت بسیار خوب سمویل حقوق شما رو براتون توضیح میده سمویل حقوق شما رو براتون توضیح خواهد داد که وقتی پادشاه داشتید چطور خواهد بود اگر این خواسته شما هست میتونید پادشاه داشته باشید. پس اونها برای خودشون صاحب پادشاه شدند شما باید جرأت خیلی زیادی داشته باشید که تاریخ پادشاهی رو بخونید کتابهای تاریخی کتابهای مملو از ها. یادم می که برای اولین بار کتاب مقدس رو میخوند، او خیلی با فرهنگ و خبره بود او میگفت من تا حالا چیزی به این وحشتناکی توی زندگیم نخوندم اگر کمک روح القدس نبود من نمیتونستم این کتاب رو تموم کنم این وحشتناکه خب همینطوره وقتی که نوشته جات پادشاهی رو میخونید وا شتناکه چون که خدا هرگز نمیخواست که اونها پادشاهی داشته باشن و عواقع به داشتن پادشاه رو تحمل کنه خدا مسئول چیزهایی که در نوشته جات پادشاهی میخونید نیست پادشاهان مسئول بودن چون که بسیاری از اونها شریر بودند مردم هم مسئول بودند چون که خودشون اون پادشاهان رو خواستند وقتی که این نوشته های پادشاهی رو میخونید این رو فراموش نکنید بزرگترین ارزش خواندن نوشتجات پادشاهی و کتاب‌های تاریخی اینه این کتاب‌ها به شما کمک می‌کنند که مفهوم پادشاهی خدا رو وقتی عهد جدید رو می‌خونید درک کنید بعد از اینکه اون پادشاهان سبب شدند پادشاهی تقسیم بشه و اون اسارت‌ها و تمام اون مصیبت‌های ناشی از اون پیش بیاد ما دوره‌ای رو داریم که بهش 400 سال سکوت می‌گیم در اون دوره هیچ اتفاقی نیفتاد خدا بعد از تاریخ یهود آخر کتاب نحمیا تا شروع عهد جدید با قوم خودش صحبت نکرد 400 سال تمام سکوت بود زمانی که خدا اون سکوت 400 ساله رو میشکنه بنی اسرائیل دوباره مغلوب شدند. این بار اونها مغلوب رومی ها شدند. اونها تحت اسارت وحشتناکی هستند سکوت زمانی شکسته شد که یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح مسیحای موعود موعظه کردند اونها به چی موعظه کردند اونها بشارت پادشاهی خدا رو موعظه کردن معنی اون چی بود؟ اگه به اونها گوش کنید اونها پادشاهی خدا رو توضیح میدن در لغا باب هفته عیسی گفت وقتی من بشارت پادشاهی خدا رو به شما میدم منظورم این نیست که خدا میخواد پادشاهی خودش رو به صورت جغرافیایی و تاریخی برقرار کنه شما صدها سال پیش پادشاهی او رو رد کردی من به شما مجده میدم که خدا مایله باز هم پادشاه شما بشه این بار مبنای پادشاهی خدا افراد خواهند بود پادشاهی خدا درون شما خواهد بود کاربرد چیزی که ایسا گفت به این معنیه که هر مردی هر زنی هر پسر و دختری که اجازه بده که خدا پرچم سفید تسلیم رو در قلب اونها به احتزاز در بیاره و اونها بگن میخواهیم که تو پادشاه ما باشی و میخواهیم مطیع تو باشیم اونها بخشی از پادشاهی خدا خواهند شد. یعنی اونها پادشاهی خدا رو دیدند و وارد پادشاهی خدا شدند. وقتی عیسی به نیقودیموس می گفت که تولد تازه پایان کار نیست و پایان کار پادشاهی خدا هست، عیسی به نیقودیموس می گفت، نیقودیموس. برای اینکه مردم پادشاهی خدا رو ببینن باید این تجربه رو داشته باشند. باید از نو متولد بشن. فقط وقتی از نو متولد شدند، چشمانی خواهند داشت که ببینن. خدا میخواد پادشاه اونها باشه و فقط بعد از اینکه که پادشاهی خدا رو دیدن وارد پادشاهی خدا خواهند شد پولس همین چیز رو در اول قرنتیان دوازده میگه هیچ کس جز به واسطه روح القدس نمیتواند بگوید عیسی خداوند است منظور پولس از این چی بود؟ یادمه که من در یک خلوت دعایی با مشایخ کلیسا سالها قبل به اونها مأموریتی دادم اونا کسانی بودند که سالها توی کلیسا بودند از اونا خواستم که نیمه دوم متا باب شش رو بخونن و بر روی سیستم ارزشی عیسی تحقیق کنن. از اونا خواستم که جوابهای این دو سوال رو پیدا کنن. اولین سوال این بود. بر اساس تعالیم عیسی در این متن کتاب مقدس متا 6، 19 تا 34 اولویتهای من چه چیزهایی باید باشند؟ مهمترین چیز در زندگی من بر اساس اون اولویت ها چی هستند من از اونها خواستم که جواب اینها را برای من بنویسند بعد گفتم جواب خودتون رو بر اساس تجربیاتتون بنویسید بر اساس اینکه چطور وقتتون رو صرف می‌کنید چطور پول و انرژی و تأثیرتون رو به کار می‌گیرید اولویت هاتون چیه بر اساس اینکه از خودتون چطور استفاده می‌کنید و مهمترین چیزهای زندگیتون چی هستند و اهمیتش رو چگونه نشون میدید گفتم رو راست باشید اگه نخواید جواب بدید مجبور نیستید این کار را بکنید فقط به نفتون هست که این کار رو بکنید. بعد از اینکه اونها چهار ساعت بر روی این کار کردن دوباره جمع شدیم و من گفتم آیا کسی از شما میخواد که جوابهاش رو با ما درمیون بذاره؟ بعد از سکوتی طولانی یکی گفت من حاضرم او گفت برای اولین بار در زندگیم دیدم که عیسی مسیح و خدا باید مهمترین اولویت زندگی من باشن. اولویت شماره یک زندگی من. او باید در اولویت باشه. پرسیدم قبلا به این نتیجه رسیده بودید؟ گفت هرگز. واقعا هرگز به این نتیجه نرسیده بودم. من ده سال بود که این مطلب رو در اون کلیسا معایزه کرده بودم. تصور نمیکردم که اون مطلب رو نگرفته باشه و بالاخره وقتی در مورد خودش فکر کرد متوجه شد. بعد گفتم در مورد سوال دوم چی؟ براساس اینکه چطور وقت و پول و انرژی خودتون رو صرف می کنید؟ فکر می کنید هاتون چه چیزایی هستند؟ عیسی گفته اگر میخواهید بدونید دلتون کجا هست؟ از خودتون بپرسید گنجینه های شما کجاست؟ یعنی اینکه صورتحساب های مالیتون رو در دو سال گذشته بررسی کنید و اونها رو نگاه کنید تقویم قدیمیتون رو بردارید و ببینید وقتتون رو در دو سال گذشته چطور سپری کردی؟ اینجوری واقعا میفهمید قلبتون کجاست؟ من این رو در مععظههام تاکید کرده بودم او گفت مهمترین چیز در زندگی من خودم همسرم و پسرم و امنیت مالیمون بوده او شش چیز دیگر هم نام برد و بعد گفت نمیدونم مسیح در کجای این قرار داره بعد از اینکه چند نفر از اونها مثل او جوابهاشون رو با ما در میون گذاشتن، گفتم با تمام صداقتم بذارید چیزی رو با شما در میون بذارم عیسی گفته اگر تولد تازه داشته باشید ایسا گفته شما چیزی خواهید دید و وارد چیزی خواهید شد ایسا گفته اگر تولد تازه داشته باشید پادشاهی خدا رو خواهید دید این مفهوم رو خواهید فهمید که خدا گفته میخواد پادشاه شما بشه وقتی از نوع متولد بشید وارد رابطه ای خواهید شد که به موجب اون خدا پادشاه شماست بسیاری از شما گفتید که این حقیقت رو ندیدید و روک و کنده تصدیق کردید که وارد اون رابطه نشدید حالا ازتون میپرسم آیا از نو تولد یافتید به عبارت دیگه منظور از تولد تازه اینه که شما پادشاهی خدا رو ببینید و وارد اون بشید اگر میگید که پادشاهی خدا رو ندیدید و وارد اون نشدید پس تولد تازه رو تجربه نکردید پولس گفته ما جز به وسیله روح القدس نمیتونیم بگی میسا خدابنده است پولس داشت اونجا چی میگفت خیلی ایث رو ناجی ستا می کنند که هرگز حتی مفهوم خداوندی رو نشنیدن. اونها به عنوان به او اعتماد می کنند اما حتی هرگز به این فکر نمی کنند که بپرسند خداوندا میخواهی من چیکار بکنم لطفا خداوند من شو، لطفا پادشاه من باش ایسا گفته اولین محصول جانبی تولد تازه اینه که شما خواهید دید خدا میخواد که پادشاه شما باشه به قول ایسا شما وارد یک رابطه خواهید شد شاید او رو کاملا شاه خودتون نسازید، اما حداقل وارد رابطه ای با او خواهید شد که او شاه شما میشه. این چیزیه که مفهوم کلی پادشاهی خدا هست. مفهوم پادشاهی خدا خیلی ساده است. مردم میتونند اون رو مفهوم پیچیدهی بکنند، اما مفهوم پادشاهی خدا چیز پیچیده ای نیست. عیسی گفته تا وقتی تولد تازه نداشته باشید، پادشاهی خدا رو نخواهید دید. منظور عیسی این نبوده که تا وقتی تولد تازه نداشته باشید وقتی مردید وارد پادشاهی خدا نخواهید شد وقتی به عهد قدیم برگردید خواهید فهمید که منظور از پادشاهی خدایی نیست به این دلیلی که این شش کتاب تاریخی که بررسی می کنیم اهمیت دارند اونها به ما نشون میدن که پادشاهی خدا چیه و پادشاهی خدا چی نیست عیسی آمد که مجده‌ی پادشاهی خدا رو موعظه کنه در نگاه اجمالی گذشته که به عیسی داشتیم دیدیم که عیسی چیزهایی رو در رابطه با پادشاهی خدا موعظه میکنه توضیح میده و تعلیم میده در نگاه اجمالی که به پولس داشتیم دیدیم که پولس هم همون کار انجام میده چیزهایی رو در رابطه با پادشاهی خدا با مردم در درمیون میذاره یک بار دیگه باید بگم پادشاهی خدا مفهوم بسیار مهم میه. دعاهای ما باید با این شروع بشه پادشاهی تو بیاید وقتی که اولویت هامون رو دستبندی می کنیم، پادشاهی خدا باید اولین اولویت باشه. اگر به با اولویت هاتون به عنوان یک هدف با دایره های متحد نگاه کنید، باید مرکز این دایره ها پادشاهی خدا باشه. وقتی اول سمویل رو میخونید خواهید فهمید که منظور از پادشاهی خدا چی هست. خدا میخواد که پادشاه شما باشه. وقتی که ما نمیخواهیم که خدا پادشاه ما باشه، میتونیم به روش خودمون پادشاهی رو داشته باشیم اما در این صورت باید بر سر سفره مهمانی عواقب اون بنشینیم بعد از سالیان سال عواقب مصیبتبار و سکوت بسیاری از جانب خدا اون سکوت با مجدهی شکسته شد خدا میخواد یک بار دیگه شاه شما بشه این خبر خوش هست فقط حالا این پادشاهی بر اساس افراد هست مسئله اساسی و زیربنایی اینه که آیا پادشاهی خدا رو میبینید؟ و آیا مایلید که وارد اون رابطه با خدا بشید؟ همین جا، همین الان، جایی که خدا پادشاه شما بشه و شما مطیع او باشید. وقتی به این بخش از تاریخ یهود میرسید، مفهوم پادشاهی خدا یکی از مهمترین چیزهایی که میتونید مشاهده کنید. اگر شما این مفهوم رو در کتابهای عهد قدیم که به اونها کتابهای تاریخی پادشاهی میگیم درد کردید، وقتی به عهد جدید برسید و اون عبارت رو بشنوید اون مانند یک مکاشفه برای شما باز خواهد شد هدف از تولد تازه و اولین محصول اون پادشاهی خدا هست وقتی تولد تازه پیدا می کنید پادشاهی خدا رو خواهید دید وقتی از نوع متولد می شید، وارد ملکوت خدا می شید. آیا ملکوت خدا رو دیدید؟ آیا وارد ملکوت خدا شدید؟ آیا از نوع تولد یافتید؟ اگر نیافتید از شما دعوت میکنم که امروز این کار رو بکنید با من دعا کنید خداوندا می خوام که پادشاه من باشی من گناهکارم و میخوام خوام که متی تو باشم عیسی وارد زندگیم شو و منو تازه کن من زندگیم رو به دستهای مهربان تو میسپارم در نام عیسی آمین دوستای عزیز واقعا مایه یه که کلام خدا رو به همراه شما بررسی میکنیم. متشکریم که دانشجوی وفاداری هستیم و از دیگران برای ملحق شدن به ما دعوت میکنیم. ما در حال مطالعه نوشته های پادشاهی هستیم و معلم ما نکات مهمی رو توضیح داد تا بفهمیم که خدا مشتاق پادشاه زندگی های ما باشه. امیدواریم که این درس ها شما را تشویق کنه که فردی وفادار و موتی برای خداوند و پادشاهمون باشین. تا برنامه بعدی باشد که قلب های شما تشویق شود آرامیش خداوندمان در قلب ها و زندگی های شما حکم فرما باشد و به او اجازه دهید که پادشاه قلب های شما باشد.